مرحبای بحمد و حیم الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم رب شرحلی صدری و یسرلی امری و خلال من ملیسانی یفقه و قولی مسلمانای محترم به سلسلی درسایی که مقابل خدمت تانواده داده دا بودم در درسایی اسلام شناسی موضوع درس امروز ما عبادت شناسی معاصر است امروز ما مسلمانها به اساس دوری از فهم درست قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم و یا هم به اساس تبلیغات دشمنای اسلام مفهوم عبادت احیانا به شکل درست و کامل از او به بشک شکل که قرآن شناسی حقیقی و مطابقت با سیرت و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه او را فراموش کردیم امروز احیانا عناوین بر عبادت داده میشه که اونها عبادت نیستند. بعضی اوقات عبادت هایی که در دیگه دیگهی وجود داره مثل هندویزم و مسیحیت او به شکل از اشکال به نام عبادت در اسلام بیان میشه خداوند متعال جل جلاله بر ما میگه که ولا تَقُومُوا ما لیس حَتَّىٰ بهی علم در چیزی که علم نداری توقف نکو به خاطر ازی که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایک کانوا مسئولا بنان انسان حس سامعش حس باسرش و فکر و اندیش و قلب از او همه در مقابل خداوند مطال جل جلوه مسئولیت دارن بر یک مسلمان لازم است اول بفهمه که عبادت قرآنی کدام عبادت است عبادت قرآنی اونمو عبادت است که او را خدای عز دوز داره و کسی که او عبادت بکنه سبب میشه که خدا او دوست داشته باشه بناهن من چی کنم که خدا را دوست داشته باشم که خدا مرا دوست داشته باشه هر کسی میتونه بر خود نمره بده، و کلیدش چیز، کلیدش آیت است که میگه قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیب الله ای پیغمبر صلی الله علیه و و یا هر کسی که تو قرآن تشریح و ترجمه میکنی قل بگو ان کنتم تحبون الله اگر شما حقیقتاً الله تعالی را دوست دارین فاتبعونی پس مطابعت از ما بکنین یعنی در عمل کردتان اعمالتان هم مطابق سیرت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم بسازین قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی بنا ان اگر انسان متابعت از پیغمبر صلی الله علیه و وسلم بکنه باز اینجاست که یحببکم الله باز الله تعالی شما را دوست می داشته باشه بناهن وقتی میگیم لا اله ایلا الله ای هدف زندگی یک مسلمان تشخیص میکنه که حدفتان شناخت ذات الله جل جلوه است خب برای رسیدن به خداوند از کدام راه استفاده بکنیم از فلسفه استفاده بکنیم از مارکسیسم و لینینیزم استفاده بکنیم از نظریات ماتریالیستا و ایدیالیستا استفاده بکنیم خود کلمه طیبه بر ما دست بده که محمد و رسول الله بناان راه محمد صلی الله علیه و سلم فکر و اندیشه محمد صلی الله علیه و سلم سیرت و سلوک محمد صلی الله علیه و سلم ای راه است وسیله است به رسیدن به هدف اولیاء لا اله الا الله عبادت در دو نقطه مختصر میشه اطاعت اوامر خداوند متعال جل جلوه و دوری از چیزهایی که خداوند انسان ممنوع کرده. احیانا بعضی از اشخاص مصروف عبادت نیستند بلکه فکر میکنند که ما عبادت میکنیم. یک نفر تا به صبح پای خدا در اصبان بسته میکنه و خدا در چت کشال میکنه و فکر میکنه که با خدای من این خدا تا صبح در زحمت انداختم من عبادت کردیم خیلی عبادت نشه خداوند خود نمیخواه که انسان خودا رنج و درد بده یک روز برای یک کسی گفتیم که با اویخ وضو کردن نسبت با آوهگرم کردن خوبتر است او چی اون بجاره نتبه می فهمید و نه هم تجربه داشت گفت اگر کت آوهگرم کتاب آوهگرم کردن ثواب زیاد داشته باشه خیلی کت او جوش اگر آدم وضو کنه ثواب باید، ثوابش باید زیادتر باشه یعنی نفهمیدن هدف عبادت است وقتی که ایک انسان نفهمه از پیشش تعویل و تفسیر عبادت در اسلام غلط میشه و او فکر میکنه که کاری را که من میکنم اطاعت و عبادت است، در حالی که عمل کرد از او طاعت و عبادت نیست پس ما در درس امروزی میخوایم که حقیقت عبادت را بشناسیم یک عالم به پیش شیطان سختتر است نسبت به یک هزار انسانی که عبادت میکنه بدون علم ولا تقف ما لیس لکه به علم به چیزی که علم نداری توقف نکن اگر شما یک عبادت تانه به اساس فهم درست ایمانی و قرآنی از او ادا بکنین او بهتر است که 100 عبادت شما انجام بتین لاکن به اساس عدم فهم و عدم تعقل و عدم تفکر خب عبادت در اسلام اقسام مختلف داره که دو قسم اساسی از او عبادت های فردی و عبادت های اجتماعی است با سلسله درس ها من که کل عبادت ها را امروز خدمت تقدیم بکنم یک بخش از او که مربوط به عبادات فردی میشه چون انسان من حیث فرد یک عبادت میکنه و احیان انسان یک عبادت میکنه که او ارتباط میگیره با جامعه که در اونجا زندگی میکنه یعنی از خود میبرایه و با جامعه اینول عبادتی که به فرد تعلق میگیره کدام عبادت هاست و عبادات هایی که به جامعه تعلق میگیره کدام عبادت هاست عبادت‌های فردی رو با تانستم تقسیم بندی بکنیم و عبادات های فکری عبادت های لفظی عبادات بدنی عبادت های مالی و عبادت های این پنج قسم عبادت است که انسان حیث فرد رو انجام بده، خودش با خود و باز قسم دوم عبادت که او مربوط به جامعه و اجتماع میشه در قسمت عبادت های فردی اولش عبادت فکریست که متاسفانه بسیاری از مسلمان ها این عبادت بیخی فراموش کردن ما میتونیم خداوند با فکر خود عبادت بکنیم با عقل خود عبادت بکنیم با اندیشه خود خداوند عبادت بکنیم متاسفانه بسیاری کسا داوال از این عبادت بیخبر هستند و از ای که بی‌خبر هستند عبادت نمیکنن. خداوند متعال جل جلاله بر ما در آیت شریف صراحتن با صراحت بر ما میگه که بنده های مؤمن حقیقی خداوند معرفی میکنه که اونا نخستین و اساسی ترین عبادت در نظر میگیرن و با اساس عبادت دیگه های خدا میکنن. کی میگه خداوند متعال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذین یذکرون الله قیاما و قعوداً و على جنوبهم بنده های حقیقی خداوند کسانه هستند که خداوند الله تعالی را بیاد دارند و یاد می قیامن در حالت ایستاده و قعودن و در حالت نشسته و علا جنوبهم و به پهلو خفته وقتی که یاد کردن چی مانا یاد کردن؟ یاد کردن نه که بر زبانت همد گویا در دلت پیدا سنم ای باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود که تصویه در دستش باشه، ست مرتبه سبحان الله بگوه لاکن یک مرتبه خدا و یادش نبه یک کسی میگه ما در کات نمازی پیشی نخاندم لیکن در در کات نماز یک دفعه خدا یادم نامد چون او در نماز خود خانده میره که الحمدلله را العالمین سوره را میره در پشت امام ایستاده است لیکن اگر از نماز خلاص شوه برش ببینی که امی امام در نماز کدام سوره را خاند فکرش نیست بناهن قرآن بر ما تشریع میکنه که یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم در سیالت خداوند بیاد دارن وقتی که بیاد داشتی خدا را چی نتوچه اکر که گفتم سبحان الله سبحان الله نه و یتفکرون فی خلق السماوات الارض زو یاد داشتن خدا بر از اینا نتیجه میده چی نتیجه میده که اینا باز تفکر می در خلقت آسمان ها و زمین عبادت چه قسم بکنیم به امروز ما ده دقیقه تنها میشینم و خود سیل می کنم. وقتی که سون دست خود سیل کردم ولله اگر انگشت مه موتو می بود و قاط نمیشد آیا م میتانسم نورمال زندگی بکنم وقتی که میخواستم یک لغمه نانه بگیرم درست گرفته نمی شد از پدر خود پرسان کنم پدر سیستم در انگشتهای م تو ما خبر ندارم پیش ازی که تو پیدا شوی که تو بچه‌ای یا دختر تو جور هستی یا معلول و معیوب هستی اینجاست که باز فکر انسان انسانم به خداشناسی انتقال می‌ده او که اون که که من کلی انگشت که تو سیار نورمال قاض شده میرم تا من بتونم تمام کار خدا بکنم اگر انگشتای من قاط نمی‌شد این قسمی بود سر کامپیوترم و کار کردن نمیتونستم وقتی که کار می‌کنم پس ذاتی که ای انگوشتاره بر ما هر کدا میشه مفاصل داده او را باید من تشکری از پیشش بکنم حضرت عمر رضی اللہ تلانهو تواف بیت الله شریف را میکرد دید که یک نفر دعا میکنه در گرد کعبه الله مجعلی من القلیل الله مجعلی من القلیل عزت و من برش گفت که کاکا Ka چی دواز. خدا ما در جمله مردمای اندک قرار بتیم عزت عمر برش گفت که هیچ چیست ای خونه در قرآن آمده و نه در سنت آمده که قسمی دعا بکن ای از کجا پیدا کردی؟ این شخص از ذات عمره نمیشنخ که ای امیر است و خلیفه است برش گفت که شما قرآن درست نفامیده اگر قرآن درست میفامیدی در قرآن شریف میگه که و قلیل من عبادی شکور ها را کلگی استفاده میکنند تمام روز در نعمت های خداوند غرق هستیم غرق هستیم ولی از اینکه نعمت ها بسیار زیاد و فراوان است در بارش فکر نمی کنیم و وقتی که در چیز فکر نکردی شکری از او را از کجا ببینی وقتی که انسان فکر بکنه و یا في خلق السماوات والارض سانولیهم آیاتنا خداوند بگم ما نشان میدیم آیتهای خود را في الافاق در افقها در جهان بزرگ و في انفسهم و در اناتومی وجود خودشان که این جهان کوچک است این برشان نشان میدیم و خداوند نشان میدن ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا و به کفاری و به غفلت نخوری غفلت چی هست مرض است و اکثریت مردم به این مرض شخص مبتلا هستند که هیچ وقت در نعمت های خداوند فکر نمیکنن علما میگه اگر یک کس نماز نمی خوانه چه قسم او را بخواهیم که نماز خوان بر از او اول فکر بتین تا از خواب غفلت بیدار شود چه قسم از خواب غفلت بیدار میشه؟ بر از او نعمت های خداونده معرفی کنین چون او تمام نعمت ها را استفاده می کنه از تمامی نعمت ها استفاده می ولی بی خبر است یک روز با یک دسمال چشمایش بسته کنین و برش ببین که تو برو یک گلاساو بیر که ده مرتبه سرش ده دیوار بخوره خاطر آوردن یک گلاساو باز می که نعمت چشم یعنی چی میگه از جنتی مپرس که جنت چسان سانه است از جنتی پرسان نکو که جنت چطور است از دوزخی بپرس که اعراف بهشت است وقتی کسایی که در جنت باشن نعمتهای خداوند میبینه از او پرسان نگو که نعمتها چی هست او غرق در نعمتهاست از این خاطر بسیاری نعمتها را فراموش میکنه از دوزخی بپرس برو پیش دوزخی برش بگو که نعمت چیست میگه اعراف بهشت است اعراف یک فاصل اگر بین جنت و بین دوزخ اینمی دوزخ که من خلاص شوام در احراف اگر اجازه بته اونمو برای من بهشت است اگر انسان مسلمان می فکر بکنه اد اقل در برنامه که پیشتر مولوی صاحب گفت خیر از در برنامه ماهوارتان یک مرتبه به شفخانه ها سر بزنین و از کسایی که مریض هستند از اونا پرسان کنین از کسی که تکلیف تنفسی داره پرسان کنی نفس تنگی که پین درخی نفسش تنگ میشه چشمایش به طرف اوامی مانه و دست خدا دراز راز گریفت تا متابلیت میخوام، خواهم متابلیت که اگر تابلیت برش دو درخی نبری نفسش قید میشه باز میفهمی که خدایا شکر که من سیستم تنفسی ما به نورمال کار میکنه. باز او وقت شکر میگنی این در شکر نعمت ها یکی از عبادت ها عبادت های فکری و عبادت است که به اندیشه انسان تعلق داره پس وقتی که فکر خود انسان جور کرد و ای آیت قرآن درست در زندگی فکری خود تطبیق کرد که الذین یذکرون الله قیامن و قعودن و علا جنوبه و فی خلق السماوات والعرب و تفکر و تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین باز این برش نتیجه میده چی نتیجه میشه؟ باز قرآن بر ما میگه که وقتی که این قسم انسان مسلمان باشه باز وقت نتیجه تفکر ازی ای, ای میشه که میگه ربنا ما خلق تا حاضر پروردگارا پروردگار همه ای سیستم های زندگی را باطل خلق نکردی. باز اونجاست که میفهمه که اونمو خدایی که ای سیستم و ای جهان بزرگ جهان کوچک خلق کرده باز اونمو خدایی هست که انسان هایی که شکر نمی کنن به اعذاب خود مبتلا میکنه باز میگه فرقینا عذاب نار پروعدکارا ما را از عذاب دوزخ نجات بده. پس شخصی که به حضرت عمر گفت که قرآن ای قسم میگه و قلیل من عبادی شکور خدای از جل میگه که بسیاری از بنده های ما کسایی که شکر نیمت های ما را میکنن بسیار کم هستند کی شکور میکنن؟ کسی که فکر میکنه. وقتی که ما نیمت بشناسیم باز باد از او شکر از میکنیم و او کسایی که فکر میکنن و باز شکر میکنن و قلیلون من عبادی شکور است اونجا حضرت عمر به این شخص گفت که حقیقتا که تو قرآن شناس بودی، تو فامیدی و تو دعای حقیقی کردی. وقتی قرآن از بشان ما و شما هر آیه قرآن وقتی که ما و شما مورد متعال قرار بتیم می‌بینیم که درباره تفکر و تعقل آیات زیاد قرآنی است. در دستوری بقره آیه 219 خداوند متعال میگه کذلک یبین الله لكم الایاتی لعلکم تتفکرون. یک قسم خداوند بر شما آیات قدرت خدا نشان میترد شاید که شما فکر بکنین در آیت شریف دیگه کسانی که فکر نمی‌کنن، اونا را توبیخ و سرزنش میکنن سوری انام آیت پینجام میگه افلا تتفکرون ای مردم شما فکر نمیکنین فکر بکنین عدیقل یک ساعت تفکر و اندیشه در مخلوقات خداوند از شست تا هفتاد سال عبادت فضیلت و برتریت داره اگر یک ساعت انسان فکر بکنه در وجود خود یک روز یک داکتر سر گفت که یکونیم میلیون سلول در وجود انسان در چشمای انسان کار میکنه تا که انسان بتانه یک تصویر رنگره میبینه ای زودت داره به تفکر که انسان فکر بکنه یک لغمه رو که ما شما میخوریم تا وقتی که ای تقسیم میشه به خون و به پوست و به گوشت و به استخان اگر درباره باری ازی انسان یک سات فکر بکنه باور بکنید در روی زمین هیچ کسی بی ایمان و بی دین و بی گافر نمی ایمانه. همه تسلیم میشه به قدرت خدای عزوجل کذلک نفصل آیاتی لقوم تفکرون خداوند میگه به شکل ما به تخصیل دلایل قدرت خدا بیان میکنیم شاید که اینها فکر بکنن سری بقرار آیتی دستد و هو لذیمت دل الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات جعل فيها ها زوجین پین از تمامی میوه ها یک جفت خداوند خلق کرده یخش لایل نهها ان فی ذلک نقامی تفکرون میوه ها، آسمان تغییر, تغییر شبان روز همش آیاتی هستند بر شناخت خدای از زوجل اگر انسانها فکر بکنن. تن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار در خلقت اسمانها وزمین در اختلاف شب و روز و التي تجري في البحر كشتي که در بحر در حرکت در جريان است بما ينفع الناس که ك... مردم از فیت میگردد و ما الله من السماء من ماء آب که خداوند از آسمان نازل میکنه ف احياء به الارض بعد موتی ها زمین مورد آدبارا باعث جذب زندگی میکنند و بس من كل الدابه ونشر کرده عنوي مختلف از جن بنده ها و تصریف ریاح و گشتانه بادها و صحاب و ابرها و صحاب المسخری بین السماء و الارض و ابرهای طاوی شده بر انسان ها در بین اسمان الزمین لآیات لقوم یعقیلون کلش دلایل از قدرت خدای عزا وجل و اقوامی که از تعقل منطق کار می گیرن آیت 164 به بقره بنا کسانی که تفکر نمی کنند اونا را خداوند متعال در جمله لا یعقیلون قرار داده فهم لا یعقیلون گفته و اذا الى اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانه قوم لا يعقلون خداوند میگه وقتی که شما کسانی را دعوت میکنین که بین نماز بخونین به عبادت خداوند مصروف شین اینا ایره ساتیری میگیرن و ایره مسخره میسازن ای بخاطر از نیست که اونا تفکر اندیشه کردن چون اونا عقل و منطق خود در کار نندافتند بنا خداوند بر می که شما به این متاثر نشین که یک نفر دعوت میکنیم کنین بر نماز خواندن و درس خواندن بر طاعت خداوند و عبادت خداوند پس اونا چی هستن لا کسانی هستن که فکر نمیکنن و مثل الذين كفروا کماثل الذی یلقوا بما لا اسموا ایلا دعاء و ندا ثم بكم من فهم لا يعقلون اونا شاید نشأت به شکل ظاهریش و فیزیکیش چشم دارن حس سامیش از ما که قوی تر باشه قلبشان شاید بسیار خوب کار بکنه لکن خداوند متعال برشان می که نخیل بناکر هستن گنگ هستن و عقل ندارن چرا وقتی که عقل انسان انسان به خودشناسی نرسانه عقل انسان انسان به خودشناسی نرسانه پس او عقل گفته نمیشه؟ پس او در حقیقت شاید انسان خود عاقل فکر بکنه بلکه او در حقیقت جاهل است از جمله عبادت های فکری برادارای محترم ایمان حقیقی است ایمان قرآنی ما ایمان داریم چند قسم ایمان داریم ایمان فرهنگی داریم که انسان از والدین خود ایمان خود میگیره ایپش پیش خداونده ایچ نداره ایمان که یا کسی ببیند من به خاطر عزی ای کار میکنم که مادر و پدرم ای کار میکردن به نعنی فوتوکاپی مادر و پدر خود است شاید مادر و پدرش کافر باشن گمراه باشن حتی بسیاری کسا هستن که خوب تحصیل کرده و با دانش هستند. میتون قرآن مطالعه بکنن میتوان ترجمه قرآن بخونن لیکن با وجود از, از این هم ایمانی از این ایمان فرهنگیست پس به و نشه که والدینش بر از و تحرید می کنند. به او در حرکت است و این بیارزش است ای ایمان ایمان انسان باید از قرآن شناسی انسان ایمان بگیره خدا چی میگن؟ ما وقتی که موحد هستم آیا خداوند مرا موحد می‌شناسه؟ آیا شروطی که یک انسان موحد در قرآن داره در وجود ما هست؟ این مهم است. در روز قیامت پسرم سعدی میگن پسرم در روز قیامت و در قبر تو را نپرسند که پدرت کیست، بل بپرسند که عملت چیست؟ از عملکرد خود انسان انسان سوال میشن نهی که پدر من چی بود پشت نام پدر چی میگردی پدر خیش و اگر مردی خودت برای خود پدر شو و قرآن درست بفام وقت ما میگیم مواهد هستیم بعضی کسا بگمان و فکر اندیشه خود موحید است، لكن موحد قرآنی بکار کار است. من خودم میگم موحید هستم. یک روز عقیده توحید خودم با قرآن در آیینی قرآن عقیده خود ببینم. مولوی س بر من یک پنج ده آیتی که توحید تشریح میکنه از قرآن بخوان باز من پرسان میکنم ولی ای ها در وجود ما هست خدا گفتم موحد کیز قرآشی ها قرآن چی میگه ببینین میگه ولی این من خلق السماوات والارض وقتی که از قرآشی ها پرسان میشد که من خلق السماوات والارض آسمان ها و زمین کی خلق کرده میگه اینا میگفتن لا يقولون الله میگفتن الله خلق کرده کی میگفتی گفتن؟ ابو جهل ولئن هم سألت ای پیغمبر خدا اگر تو سؤال کنی هم از اینمی مشرکین قرائش من خلق السماوات والا در مشرکین قرائش ابو جهل و ابو لهب اما اشان تا خیل بودن وقتی که سوالشان میکردی که من خلق السماوات والاق خالق آسمان ها و زمین کیست؟ من کی خلق کرده آسمان و زمین؟ لا الله پس ابو جهل میگفت که الله خلق کردن ابو می میگفت که الله خلق کردن وقتی که از اینا از این مشکل سوال میکردی تو کی خلق کردن؟ میکرد الله اتا شیطان شیطان چه گفته؟ خلقتنی من نارن و خلقتهو من تین خدای تو من از آتش خلق کردی و انسان از خاک خلق کردی پس شیطان هم به خالق بودن خداوند ایمان داشت میجه خیلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که وقتی که قراشی خدا را میشناخته؟ بله. قرآن میگه: "بله این سالته من خلق السماوات والارض لا یقولون الله". خودت کی خلق کرده؟ وجاهت میگه از آسمان توسط ابرها باران کی نازل میکنه؟ میگفتن الله. پس چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونا را مشریک قرار داد؟ و چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم با امرای زنا اعلان جهاد کرد؟ به خاطر یک جمله. این جمله چی هست؟ اونها میگفتن خدا هست خدا خالق هست پیامبر صلی الله علیه و سلم برشون گفت که نه اتون نگویند که خدا هست به خاطر ازی ببینیم یک جمله فارسی براتون بگم درستی مفهوم فامیده شو. وقتی که ما میگیم استاد در مسجد است ای جمله چی فرق میکنه با جمله دومی که ما براتون بگیم که بغیر از استاد هیچ کسی در مسجد نیست استاد به جماعت کی هیچ صد بغیر غیر استاد به جماعت کی نیسته در جمله اولی استاد در مسجد است مانای است که جانب مقابل میگه با تلفن ما بهش میگیم استاد در مسجد است ولی استاد در مسجد است مانای چیست که استاد در مسجد است شاید کسای دیگه هم در مسجد رامریز باشند با ورتی که در تلفن بر کس دیگه که هیچ کسی به غیر از استاد در مسجد نیست مانای است که هیچ کسی در نماز هست و مصادراً استاد است فقط در مسجد شیشه عبادت میکنه بناا مشکل مشرکین با پیغمبر صلی الله علیه و الیهم در دو جمله بود مجرکین میفتم خدا هست یعنی ماناش چی که دیگه خداها هم هست بناهن چی میگفتن من به خدا عبادت میکنم پیشی نفر پیشی بود چی میکنی که میری میگفت یک دوست خدا ولی خدا شخصیت بزرگوار است من و هستم است. شرمنده هستم. ما میرم پیش ازی بط بازی بادیگارد است رئیس دفتر خداست از آیاز بلا باز ما ازی طریق پیش ازیو میرم بیقیم بست سالم آمد و برشان گفت که جمله دومی نخیر هیچ کسی شایست عبادت وجوز از ذات الله جل جلوه نیست بنا ان اونا نظر داشتن برای هوبل نظر داشتن برای چهارشنبه، نظر داشتن برای لات نظر داشتن برای منات لا اله الا الله را نمی پذیرفتن بناهند پیغم بسنبشه هم که خولو در اعتراف کنین بگوین لا اله لا اله الا الله لا الهه ای عبادت فکری است برادر وقتی ما کلمه میخوانیم باید کلمه خدا بفهمیم تا که عبادت فکری ما درست شوه لا الهه نفیه میکنه لا باید به مد بخوانی نیست کی نیست هیچ پیغمبری، هیچ ملایکی، هیچ دوست خدا، هیچ ولی خدا، هیچ بت، هیچ دوست، هیچ دشمن، هیچ سنگ، هیچ درخت، کلش باید نافکری. نیست. هیچ مخلوقی. کلش باید نافکری. چلی پا، سر کلش چلی بکش. باز بگو: الا الله. بالغد الله جل جلاله. به نهان برای عبادت هیچ کسی لیاقت نداره مشکل بفتر نیم ای دوستای خداست ای هوبل در زندگی خود بسیار با ایمان بود این مسیحی میگفت اوش چی میگید تو چی میگی که لا اله الا الله من ایره قبول نمی کنم چرا؟ ازادی عیسی پیغمبر خدا شخص بزرگوار است من پیش از او نرم تثیر از اون رو بند نکنم اینجا این دشمن خدا نیست دوست خدا هست کلمه خبرت میگه که دوست دشمن خدا را نفیه کو، ملایکه هستی؟ بله جبرایل علیه السلام ملائکه هستی؟ بله هستم خوب است که هستی احترام داری؟ لیکن خدا نیستی از تو کمک نمیخواهیم از تو ملائکه کمک نمیخوایم. خای چی میگم؟ خدا گفت بگم که ایا که نعبدو و ایا نستعین فکر دار چور کن بگم ایا که نعبدو علمای عربی میگن چرا نگفت که نعبود و که رو عبادت میکنیم گفت بخاطر ازی که بلاغت قرآن ایره تقاضا کرد که چون را که تو عبادت میکنی مفعول و نعلا تعظیم او میگن پس او کسره که تو معبودت قرار میتی چون اهمیتی ازو بسیار زیاد است و اینجا اختصاص میه خاص ترا. از این خاطر باید برمی. ایا که خدایا خاص فقط ترا عبادت. ایم. و ایا که نستعین و خدایا خاص فقط خاص کلمه خاص وقتی که برای کسی استعمال میکنن خدایا خاص ترا عبادت میکنم. پس اپنی وقت نماز برای ما خداوند متعال این گفته که شما عبادت فکری رو بکنین و این عبادت فکری تقاضای ازیره میکنه که وقتی که خداوند بینید که الله احد الله سمد سمدیت خداوند در نظر داشته باشی که سمدیت خداوند به پس باید در فکر اندشهی داشته باشی که خدایی را که من عبادت میکنم مثل دیگران نیست که بسیاری کسا فکر میگن خداوند مثل دگر پاچه هاست چه قسم؟ پش دگر پاچه ها وقتی که میری باید از طریق وسیله بری از طریق واسطه بری از طریق سکرترش بری پش بادیگارش بری پش رئیس دفترش بری پش وزیرش بری تا وقتی که سلسله مراتب سلسله مراتب سلسله مراتب سلسله مراتب به دو انسان در بین بامر و معمور در عمر دنیایی است سلسله مراتب بین بنده و بین خدا سلسله مراتب وجود ندارن پس وقتی که ما در اونجا سلسله مراتب مراعات کنیم به شرک داخل میشه چون مشرکین قراش میرفتن پیش بود ای بسیار شخصیت بزرگوار است اول پیش از بوت میرم اگر کل کارهای ما بعضی کارا رو خداوند بر رزق اگر رئیس دفترش قادر تا نیست پس ضرر نیست که من باید پیش خدا برم دیگه ارزی می کنم رئیس دفتر صلاحيت داده بود که رو تو امضا کنم پس ما میرم پیش بوت با دیگه کدام کاری که باز بوت برای صلاحيت نبود باز او برای خداوند ارزی می برای امضا کردن خداوند گفتی ادا سع الک ای عبد کسی که عبادت میکنه. کنه ازا سالکه ای پیغمستم اذا وقت که سالکه سوال بکنه از تو عبادی بنده های من کسی که حقیقتان می خواهد را عبادت بکنه فا اینی قریب من بنده خود نستیک هستم وقتی که ما با بنده خود نزدیک هستم پس بین ما و بین بنده ما سلسله مراتب نیست مستقیما بگو یارب والا میخوایم کمک بخواییم استعانت بخواهی کنیم؟ پس به قرآن رو جو بکن پش فلانی و فلانی نه بکن ما چی تو کنیم پس به قرآن, قرآن بگه قرآن میگه که وستعینو به صبر مسولا اگر تو کمک می استعانت می چیکو چی کو؟ با صبر و با نماز سر ما مشکل آمد مستقیما با خداوند مطال رجوع میکنم اول در مشکل صبر میکنم و بعد از اون اوزو میکنم جای نماز خدا عوار میکنم و جمع میکنم و در حالت سجده میگم یا رب یا رب که انسان عبادت قرآنی کردن فکر خود در کار انداخت و فکر خود در شناخت قرآن در کار پرده. متاسفانه ما بسیار مسلمانایی داریم که بیش از اینکه که قرآن بخوانه به کتاب دیگر رو میخونه فلسفه بر ما خدا رو معرفی نمیتانه کرده چون فیلسوف خودش نتانسته که خدا شناس شوه چون عقل خوده زیادتر در مسائلی که از توان عقل بیشتر است در کار انداخته، بران عقل بیچاره نتوانستن از این خاطر بسیاری از فلسفه‌ها بالاخره اعتراف کردن با عاجزی خود و به وجود خداوند تسلیم شدن و بعضی کسای دیگه که تسلیم نشدن بالاخره از حد خود برآمدند و گمراه شدند بناً ما وقتی که میخوایم خدا را عبادت بکنیم خدا را از طریق فکر خود عبادت بکنیم چی باید بکنیم؟ باید از طریق قرآن عظیمشان پس شناخت خداوند و عبادت فکری عبادت است که از طریق قرآن از به صورت بگیره که باقی مانده درست الله تعالی باز در افتی آینده خدمت شما تقدیم خواهد کردم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد حمدک لا اله الا الله استغفرو که و تو